حکایت پیرمردی حکایت کند که دختری خواسته بودم و حجره به گل آراسته و به خلوت با او نشسته و دیده و دل در او بسته. شبهای دراز نخفتمی و ها و لطیفه ها گفتمی. باشد که معانست پذیرد و وحشت نگیرد از جمله میگفتم وقت بلندت یار بودو. چشم دولتت بیدار که به صحبت پیری افتادی، پخته، پرورده، جهان دیده، آرمیده، گرم و سرد چشیده و نیک و بداز مونده که حق صحبت بداند و شرط مبدت به جای جا مشفق و مهربان خوشتب و شیرین زبان. تا توانم دلت به دست دارم و بیازاریم نیازارم و چو توتی شکر بود خورشت، جان شیرین فدالی پرورشت شد. نگرفتار آمدی به دست جوانی معجب خیر رای سرتیز سبک پای که هر دم پزد و هر رهز را گیزند. هر شب جایی خسبد و هر روز یاری گیرد. جوانان خورمند و خوب رخسار، ولی کن در وفا با کس نپایند. وفاداری مدار از بلبلان چشم، کردم هر دم بر گلی دیگر سرایند. خلاف پیران که به عقل و عدب زندگانی کنند، نبه مقتضای جهل جوانی ز خود بهتری جوی و فرصت شمار که با چون خودی گم کنی روزگار گفت چندین بر این نمت بگفتم که گمان بردم دلش بر غید من آمد و سید من شد ناگاه نفسی سرد از سر درد براورد و گفت چندین سخن که بگفتی در ترازو یا عقل من وزن آن سخن ندارد که وقتی شنیدم از قابله خیش که گفت زن جوان را اگر تیری در پهلو نشیند به که پیری لما رأت بین یدی بله ها شیئا که ارخا شفت سائم تقول و حاظا معهو، میتون، و این نمر رقیتو لنائم. زن که از بر مرد بی برخیزد، بس فتنه و جنگ از آن سرا برخیزد. پیری که زجای خیش نتوارد خواست الا به اصا، که اش برخیزد. جمله امکان موافقت نبود و به مفارقت انجامید چون مدت عدت برآمد عقد نکاحش بستند با جوانی تند و ترش روی دست و بدخوی جور و جفا میدید و رنج و عنا میکشید و شکر نعمت حق همچنان می گفت که الحمدلله. از آن عذاب علیم برهیدم و به دین نعیم مقیم برسیدم. با این همه جور و توند خوگی بارت بکشم که خوب روی با تو مرا سوختنن در عذاب بهک شدن با دگری در بهشت. بوی پیاز از دهن خوب روی نغز پراید. که گود از دست زشت